چند بعضی مستحبات مثلا اینکه غذا رو با دست خوردن استحباب داره ما در زمان الان هم مثلا این کار پنوز استحبابی داره برای این جا دا مثلا با دست خوردن استحبابی استحباب. نیچون خاتمم یا با دست مخوردن منم با دست میکنم این برد اثر داره این آدم رو نزدیک میکنه به اما با عنوان دیگه در به این عنوان با اگر بتونه چون ایشون این کار چون خدا در مران فرمزه و نک فیرسول الله قصفتون حسن لذا کارهایی انجام رجابی دردن بود بادی و معربی کردن قطعا پیغمبر اکرام روشش این بود که کسی بخواد تباییت از روشششون بکنه بسم الله یکیش مثلا انگور پا یا مثلا انگور میخوردنشون دونه دونه میخوردن مثلا یا لغمهاشون چیزی میگرفتن همین داره نوشتن که بردام متحدب و به آدم بیشد چون روشیشون بهتری روش بود هم من نظر مادی بهتر بود و هم من نظر تحصیلات بهتر بود اگر کلی ایمانی باشه که آدم اینقدر فیخم داشته باشه که بخواد تحصیل کنه به روش کلیش در زندگی این از اون ایمان های بالاست که اصل ما بلیش میادنان توی اگر با دست بخوری اسلام واجه نکرده شما بزرمنده یافتید که برد آزادی بیتونی ما بیسم بود کسی یه همچی که به ها دنباله کنه در روش نیمانه زوجاتش چون <تصفح> زوجاتش جنبی سیاسی داشت با سیاسی که و اگر بکنی بکنی چربی نروز نیست باید بابیشون سلبان برفتن جهاب میکردن پشته میشدن بسر بچه شون میمون شد مجبور بود این سایه خودش بچه روی خود از بادن شدن بچه ها دیگران نگرم بیری پشته میشه بچه میمونن از این جنبی بگیران و نا این رو شو همیده بودن چند بله اگر یه رویزی ما مثلا در لحظه را گرفتیم دیدیم یه هرچی مشکلی هست ما دیراه درست کنیم خودمونم نشد دیگران این مشکلی که در جامعه پیدا میشه خود بیره می میجنگن با صداقت این ایمان کشته میشن در بچهشون میمونن بعد این مشکلی بزرگیست که باید اصلاح باشه اصلاح نشید دیگران عبرت میگیرد دیگر یه نمیرن جنگ برای این وزیفه حاکم اون زمان سازمانی نبود برای رسیدی به یه مسائل خودشون تکمل میکن اما حالا بیگه ایک شده سازمان درست میکنه آدم این داره رو اینا که شوهرشون شده تزویشی کنن رو باشید هم باشید که بس از شما چند دوست که زن عطر این هم از شجا میشهده چیابا؟ شما فرموندو که سیاستی هم به از شما میشهده بس یک بر من چکم لازمه همه بگیرند همه باید زن بگیرند تو که اگی زن نگیرم به گناه بیفتن ناجم شهر نیست ازدواج از تحددی این برموتم ازدواجی که هم, هم, هم نداشتن بوی علاقه که تو مسی استعمال اطلاع میده نمازند به دیگه شاخه و تو رباید مادر من اخلاق عمدی ها و بون نسا جمع برده چرا؟ پیغمبر اجرام چی؟ پیغمبر شد زمانی که برزم مدفرش بود در جایدی از بیدیو کرده در جایدی خرافاتی بود و حوادث ترکی بود پیغمبر اجرام به قدر طوان بدل شروع کردن به اصلاحی مشکلات. یکی ای هم این بود. بازن معامله مطاق می کردن. اسمش نمی دادن. هیچ از ارزشو منزلتی نداشتن برد. ازا بیانبرم شروع کردن برد. از داخل مشکل کردن. که زنگی موجودی سکنه برد مرد خرد کرد. قسمت ازن زندگی زن که میکنه باید یه دوستش داشت. از اونجا شروع کرد. که دیگه آنم نکنن بهش این کار رو یکی کردن این ها به حل مشکلات وجود در زمان ایشون بودن تو در مورد عطر فرمویدین اون زمان چون هوا گرم بود و هم همون پس الان اگه این مشکلات نباشه عطر زدن استحبابی نداره هنوز هم اون عطر جاش برست هنوز هم هست زن هم هسته بزنید و یا زن در جامعه که مرم بود استفاده است. کانه که بودید جایی نیست مستحبه بود محدودی چقدر داره مثلا را میرفت و از یا را میرفت مگر ایمان رو اندازهی ای باشه که اون در همه کارها بدونید بیرید به دنبال خیلی افرامه کنون مناکس باشه در خودت یعنی همه افعال تحصیلی بیدیم؟ همه افعالی که ما میتونیم انجام بدیم نه همه افعال که میشونیم کاری انجام میدونیم برغان پیغمبری و نمیتونیم کار که ایشون معمولی انجام میدونیم ما هم میتونیم انجام میدونیم خیلی بہتر بنا رب بسم الله